ये एक الله که بخش و با رحمت است ستستاگش مخصوص خدایی است که بر بنده خود قرآن را نازل کرد و هیچ انحرافی در آن ننوود کتابی محکم و پاورجا، تا مردم را به واسطه آن نسبت به مجازات شدید الهی هشدار دهد و اهل ایمان را همان کسانی که عمل کردشان نیک و مفید است بشارت داد دهد که پاداشی نیک و زیبا در انتظارشان است بهشتی به که جاودانه در آن خواهند ماند و نیز به کسانی که می‌گویند خداوند فرزندی اختیار کرده هشدار دهد نه آنها آگاهی دارند نه پدرانشان حقیقتا سخن گرانی از دهانشان خارج می شود و آنها جز دروغ چیزی نمی گویند گویی از غم و به خاطر دستاورد زشتشان می خواهی خود را حلاک کنی که چرا به قرآن ایمان نمی آورند. ما هر چرا روی زمین قرار داده برای زینت آن گذاشتیم تا مردم را مورد آزایش قرار دهیم و مشخص شود کدام یک از آنها عمل کرده بهتری دارد و سر نیز روی زمین را به خاک بیگیاهی تبدیل خواهیم کرد آیا گمان میکنی که اصحاب کف و رقیم از نشانه‌های عجیب ما بودند؟ یا دار آنگاه که آن جوان مردان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سولی خودت رحمتی عطا کن و برای رهاغی از این مشکل راه نجاتی پیش پای ما بگذار. و ما در آن غار آنها را سالها به خواب فرو بردیم. آنگاه بیدارشان کردیم تا مشخص شود کدام یک از آنها مدت خوابشان را بهتر تخمین زده است. ما سرگذشت آنها را به حق بر تو قایت میکنیم. آنها آنها جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند، و از همین رو بیش از پیش هدایتشان کردیم ما دلهای آنها را یک پارچه و با ثبات کردیم آن هنگام که برخواستند و گفتند پروردگار ما همان پروردگار آسمان و زمین است و ما هرگز به جای خداوند کس دیگری را برای نجات خود نمیخوانیم که اگر چنین کنیم سخنی بی اساس گفته ایم. این قوم ما که خدایانی بجز پروردگار بزرگ اختیار کردند چرا برای اثبات معبودان خریش دلیل روشنی نمیآورند؟ به راستی آیا ظالمتر از کسی که به خدا دروغ می وجود دارد؟ حال که از این قوم ناسپاس و معبودانشان کنارگیری کرده اید و فقط خدا را میپرستید به غار پناه ببرید و مطمئن باشید که پروردگارتان شما را مشمول رحمت خیش می کند و راه نجاتی پیش پایتان میگذارد. ای پیامبر موقعیت غار چنین بود که نور خورشید به انگام طلوع در سمت راست غار قرار داشت و انگام غروب در سمت چپ آن و آنها نیز نه در دهانه غار بلکه در محبته داخل آن قرار داشتند اینها همه از آیات خداست بدان که خداوند هر کرا هدایت کند او هدایت شده واقعی است و هر را در گمراهی بگذارد هرگز یاور و راهنمایی برای او اون یافت. موقعیتشان چنان بود که میپنداشتی همه بیدارند حالان که همه در خواب بودند حتی ما آنها را به سمت راست و شب برمیگردانیم و سگشان نیز در دهانه غار دو دستش را دراز کرده بود و گوگی نگهبانی میدان اگر به سراغشان میرفتی، از ترس پا به فرار می گذاشتی. به هنگامی که بیدارشان کردیم تا با یک دیگر گفتگو کنند، یکی از آنها گفت، فکر می چه مدت خوابیده گفتند، یک روز، شاید هم کمتر. گفتند، پروردگارتان به مدت زمانی که خوابیده آگاهتر است. یکی را از میان خودتان انتخاب کنید و با این پولتان به شهر بفرستید، تا پاکیزه ترین قضا را تهیه کرده و رزق را بیاورد و باید مراقب رفتار خود باشد تا کسی به وجود شما آگاهی نیابد زیرا اگر آن قوم ناسپاس شما را بیابند یا سنگسارتان خواهند کرد و یا شما را به آیین خودشان برمیگردانند گردانند که در این صورت هرگز روی رستگاری را نخواهید دید و به سان مردم را از موقعیت آنان آگاه کردیم تا بفهمند وعده الهی حق است و هیچ شکی در وجود روز قیامت نیست. وقتی مردم درباره حقیقت امر آنها به مجادله پرداختند اده گفتند و روی قبرهای آنان بنایی بسازیم تا محف شوند و دیگر سخنی از آنها نباشد زیرا پروردگارشان بهتر می با آنها چه کنند. اما عدهای که از امرشان مطلع بودند گفتند ما اینجا را عبادتگاه میگیریم برخی حقایق را نمیبینند و آنگاه بر سر تعدادشان مجادله میکنند عدهای میگویند آنها سه تن بودند و چهارمینشان سگ آنها بود ای میگویند پنج تن بودند و ششمینشان سگ آنها بود همه اینها سخنان بیدلیل است و برخی میگویند هفت تن بودند و هشتمینشان سگ آنان بود ای پیامبر بگو پروردگار من از تعداد آنها آگاه تر است و از حقیقت امر جز تعداد اندکی کسی چیزی نمی دانند. بنابراین درباره آنان جز با دلیل سخن مگو و از کسی نیز چیزی نپرس و هرگز مگو که فردا چونین خواهم کرد مگر آنکه بگویی اگر خدا بخواهد ورگاه فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو امیدوارم پروردگارم به راهی بهتر و روشنتر هدایتم کند آنها سیصد سال در آن غار خوابیدند و نه سال دیگر نیز بر آن مدت افزودند بگو خداوند از مدت خوابشان آگاهتر است زیرا غیب و نادیده های آسمان و زمین از آن به راستی، چه بینا و شنواست برای آنها به غیر از خداوند هیچ تکیگاهی نیست و بدان خداوند اهدی را در حکم شریک نمی کند و اطلو من كتاب ربک لا مبدل لکلماتهی ولن تجد من دونه ملتحدا آنچه را از قرآن پروردگارت به تو وحی شده تلاوت کن هیچ چیز کلمات او را تغییر نمیدهد و هرگز پناهگاهی جز او نخواهی یافت ای پیامبر تو نیز پا به پای کسانی که هر صبح و شام پروردگارشان را می خوانند صبر و استقامت بورس زیرا آنها وجه الله را میطلبند هرگز چشمان خود را به خاطر دیدن زینت های زندگی دنیا از آنها برنگیر و از کسی که قلب و ادراکش را از یاد من قافل کردیم و از هوای نفسش پیروی می اطاعت مکن زیرا چون این شخصی در همه کارهایش افرادگر است بگو این حق است و از سوی پروردگارتان آمده است هر کس بخواهد ایمان می‌آورد. و هر به انکار می کنند. بدانید که ما برای ستمگران آتشی محیا کرده ایم که شعلهایش سراپایشان را فرا میگیرد و انگامی که به زاری تمام نا کنند آبی به آنها داده خواهد شد که چون فلز گداختی صورتهایشان را بریان کند چه شراب بدی است و چه بد جایگاهی کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل کردشان سراسر خوبی و خدمت است بدانند که ما پاداش نیکوکاران را زاگه نمی کنیم برای آنها بهشت های است که نرها در زیر پایشان است، در حالی که به دست بندهای زرین آراسته می شوند و لباس از حریر سبزرنگ نازک و زخیم می پوشند و بر تختها تکی تکیه می زنند. چه پاداش خوبی و چه جایگاه نیکویی. برای آنها مثال آن دو مردی را بزن که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم در حالی که پیرامون آن باغها را نخل قرار داده بودیم و مابینشان را که آن دو باغ میوه خود را به فراوانی می و ما میان آن دو نهری جاری کردیم صاحب باغ در حال گفتگو رو به دوستش کرد و گفت من از نظر مال و نفرات از تو برترم و این مرد به خود ستم کرده به باغ پر و زیبای خود وارد شد و گفت گمان نکنم چون این باقی هیچ از بین رفتنی باشد همچنان که گمان نکنم قیامتی در کار باشد تازه اگر هم مرا نزد پروردگارم ببرند یعنی جایگاهی بهتر از این خواهم داشت و دوستش در حین گفتگو به او اظهار کرد آیا خدایی که ترا از خاک و سپس از نطفه آفریده و, و آقبت تبدیل به مردی کامل کرده است انکار میکنی؟ اما من اعتراف میکنم که الله پروردگار من است و اهدی را شریک پروردگارم نمیدانم چرا هنگامی که وارد باغت میشوی نمیگویی ماشا الله و هیچ نیروی جز از جانب خدا نیست؟ اگر میبینی که من از نظر مال و فرزندان از تو کمترم؟ به حکمت خدا تسلیم هستم شاید پروردگارم به من چیزی ارزشمند تر از باغ تو عطا کند قافل مشو شاید خدا از آسمان بران باغ بلایی نازل کند و آن را به زمین بیگیاه و لغزندهی بدل نماید یا شاید آب آن به اعماق زمین فرو رود و تو هرگز نتوانی به آن دست یابی. تمام میبغای آن نابود شد و او به خاطر هزینه گرانی که برای باغ کرده بود، از شدت حسرت دستانش را به هم میمانید. حال که آن باغ به کلی ویران شده میگوید، کاش هرگز کسی را شریک پروردگارم نمیپنداشتم. هیچ گروهی غیر از خدا برای یاری او وجود نداشت. از خود او اونیز کاری بر نمی اینجا آشکار شد که ولایت و قدرت از آن خداوند حق است. و بهترین پاداش ها و بهترین اقبت نیز نزد اوست برای آنها مثال بزن که زندگی دنیا چون آبی است که از آسمان فرو میریزیم و به واسطه آن گیاهان زمین می روگند و سپس خشک می‌شوند و باد آنها را میپاکند. بدانید این خداست که بر هر کاری تواناست المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر أملا مال و فرزندان فرزندان های زندگی دنیا هستند اما بدانید آثار مفید ماندگار نزد پروردگارت بهتر و امید و اخشترند. روزی که کوها را به حرکت درآوریم، زمین را وارز و آشکار میبینیم بدون شک همه انسانها را برای حسابرسی رسی خواهیم کرد و حتی یک تن از آنها را رهانه میکنیم آنها در برابر پروردگارت به صف قرار میگیرند اکنون مثل اولین باری که شما را خلق کردیم به سوی ما آمدید در حالی که تصور می کردید هیچگاه شما را به چون این بعدگاهی نخواهیم آورد. و نامه اعمالشان را در دست آنها میگذارند و در این حال مجرمان را از آنچه که در دستشان است ترسان و وحشت زده دید. در حالی که میگوگند ای وای بر ما این عجب نامه اعمالی است هیچ کار کوچک و بزرگی را برای محاسبه فراموش نکرده است. و اینجا که عمل را آشکارا می در حالی که پروردگارت و عهدی ظلم نخواهد کرد و یادار هنگامی که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید پس همه سجده کردند مگر ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد آیا با این حال ابلیس و فرزندانش را به جای من دوست و تکیگاه خود قرار می دهید حالان که آنها دشمنان شما هستند و بدانید که ظالمان بد چیزی را به جای خداوند قرار دادند ما هنگام خلقت آسمان ها و زمین ابلیس و فرزندانش را حاضر و ناظر بر کار قرار ندادیم و حتی به هنگام آفرینش خودشان این کار را نکردیم تا از اسرار آفرینش مطلع نباشند و دیگران نیز به ما تهمت نزنند که از آنها یاری گرفته زیرا ما از گمراهان یاری نمیگیریم روزی که خدا میگوید آن شریکانی را که برای من قائل می شدید صدا بزنید اما هرچه آنها را بخوانند هیچ جوابی نمی دهند. زیرا میان آن دو گروه حلاکتگاه قرار داده ای. و هنگامی که مجرمان آتش دوزخ را ببینند می در آن قرار گرفتند و هیچ راه گریزی از آن نمی آبند. ما در این قرآن برای درک مردم هر گونه را آورده ایم با این حال انسان بیش از هر چیز به بحث و جدل می پردازد هنگامی که هدایت به سراغ مردم آمد چیزی مانع ایمان آوردن و آموزش خواستن آنان از خدا نشد مگر گرفتار بودن آنها در های پیشینیان و یا دور بودن عذابی که مقرر است به سراغشان آید ما پیامبران را فقط به عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم در حالی که منکران حقیقت به واسطه باطل مجادله به راه میاندازند تا به گمان خیش حق را از بین ببرند و آیات و هشدارهای ما را به تمسخر گیرند آیا ستمکار از کسی که به آیات خدا یادآوری شده و آنگاه از آن روی برمی گرداند وجود دارد چون این کسانی دستاورد خود را فراموش کردند و ما نیز به که فر این گناه بر قلب ها و مراکز ادراک آنها پرده افکنده ایم تا درک حقایق نکنند و گوشهایشان را سنگین کردیم تا حقایق را نشنوند به نیسان چنان چه آنها را به سوی هدایت بخوانی، هرگز هدایت نمی شود پروردگار تو آمرزنده و صاحب رحمت است اگر می خواست به خاطر دستاوردشان گرفتارشان کند بیدرنگ. از آب وجودشان را دربر می گرفت اما برای آنها زمانی تعیین شده است که با اتمام آن هیچ راه گریزی نخواهند داشت اینها است که به خاطر دستاورد ظلمالود اهلشان ویران کرده ایم. در حالی که برای نابودی آنها زمانی را تعیین کرده بودیم. و یادار هنگامی که موساب به خود گفت دست از تلاش بر نمی دارم تا اینکه به محل طلابی این دو دریا برسم و این کار را انجام می دم حتی اگر تمام عمر در راه باشم و هنگامی که به نقطه تلاویی دو دریا رسیدند، از ماهیشان که برای غذا همراه راه داشتند غفلت کردند و ماهی نیز راه خود را در دریا پیش گرفت و رفت. وقتی از آنجا گذشتند موسا به دستیارش گفت غذایمان را بیاورد که از این سفر سخت خسته شده ای. دستیارش گفت آن لحظه را که کنار آن سخره به استراحت پرداختیم به یاد داری حقیقت این است که من از ماهی غفلت کردم و این شیطان بود که باعث شد من آن را از خاطر ببرم و ماهی نیز به طرز شگفتانگیزی راه خود را در دریا پیش گرفت و رفت موسا گفت آن نقطه همان جایی است که ما در جستجوی بودیم. بیدرنگ به مسیر جای پایشان دقت کردند و برگشتند. در آنجا بنده ای از بندگان خاص ما را یافتند که او را مشمول رحمت خود ساخته و از علم الهی بهره کرده بودیم. موسی به او گفت: آیا اجازه میدهی همراه تو باشم تا از دانش نجات بخشی که تو را آموخته‌اند؟ مرا تعلیم دهی؟ گفت تو طاقت و صبر با من بودن را نداری و چگونه میتوانی نسبت به چیزی که حقیقتش را نمیدانی صبر را کنی موسا گفت الله مرا سبور خواهی یافت مطمئن باش از دستور تو سرپیچی نخواهم کرد گفت پس اگر میخواهی به دنبال من بیایی نباید چیزی از من بپرسی تا آنکه خودم به موقع حقیقت آن را برایت بگوگم پس برای افتادند تا اینکه سوار کشتی شدند آن مرد کشتی را سوراخ کرد موسا گفت آیا کشتی را سوراخ کردی تا مسافرانش را غرق نمایی بطعا کار خطرناکی انجام دادی؟ گفت نگفتم که تو طاقت صبر با من بودن را نداری؟ موسا گفت معذرت میخواهد اگر عهد خود را فراموش کردم مرا معاقضه مکن؟ و برمم سخت مگید. دوباره رحصه شدند تا به نوجوانی رسیدند. آن مرد بیدرنگ نوجوان را کشت. موسا گفت چرا جان بیگناهی را گرفتی در حالی که قتلی مرتکب نشده بود؟ قطعاً کار زشتی مرتکب شده ای؟ گفت نگفتم که تو طاقت صبر با من بودن را نداری؟ موسا گفت چون از این به بعد سوالی از تو بپرسن؟ دیگر با من همراهی مکن که برای من حجت تمام است و تو معذور خواهی بود دوباره راهه شدند تا اینکه به روستایی رسیدند از اهالی آنجا تا آم خواستند ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری کردند در آنجا دیوار مخروبهای دیدند و مرد بیدرنگ مشغول تعمیر آن شد موسا گفت لا در ازای این کار مزدی از اهالی میگرفتی گفت اکنون زمان جدایی من و تو رسیده است من تو را از حقیقت آن توان صبر بر بران نداشتی آگاه خواهم کرد اما آن کشتی متعلق به مردم ای بود که با آن در دریا به دنبال رزقروزی خیش می رفتند من در آن عیبی وارد کردم زیرا آن سوتر پادشاهی کشتی ها را قصد می کرد من با این کار باعث شدم کشتی را از دستشان نگیرد و اما نوجوان پدر و مادر با ایمانی داشت ما نخواستیم که او آنها را به کفر و توقیان دارد. و با این کار خواستم تا پروردگارشان فرزندی بهتر و مهربانتر از او عطایشان کند و اما دیوار متعلق به دو نوجوان بود که زیر آن گنجی برای آنان وجود داشت چون پدرشان مرد صالحی بود پروردگارت از روی رحمت اراده کرد تا آنها هنگامی که به رشد عقلی رسیدند گنجشان را بیرون بیاورند و من این کارها را خودسرانه انجام ندادم و این بود حقیقت آن چیزهایی که تو توانایی تحملش را نداشتی ای پیامبر از تو درباره زلقرنه این سوال میکنن بگو از اونیز ذکری به میان خواهم آورد ما به او در روی زمین فرمانروایی عطا کردیم و راه استفاده از هر چیزی را در اختیارش گذاشتیم اونیز از این امکان استفاده کرد تا به محل غروب خورشید رسید همان جایی که انگار خورشید در آب چشمه تیره و گلالود پایین می‌رود در آنجا مردمی را یافت که زندگی کردند. به او گفتیم ای زلغرمه میخوایی آنها را مجازات کنی یا اینکه پاداش نیکوی اتخایشان کنی. گفت کسانی را که ظلم کردند مجازات میکنی. آنگاه آنها را به سوی پروردگارشان میفرستیم تا او نیز به سختی عذابشان کند. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنكون له من أمرنا یسری اما کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل عملكردشان نیک و شایسته است برای آنها پاداش خوبی مهیاست و دستورهای آسانی به آنان خواهیم داد سپس بار دیگر از سببی که در اختیار داشت بهره گرفت این بار به محل طلوع خورشید رسید دید خورشید بر قومی طلوع می کند که جز نور آن هیچ پوششی را در اختیارشان قرار نداده ایم. چون این بود و ما از تمام طبانایی های آگاهی داشتیم دوباره با امکاناتش رهسپار شد این بار به میان دو کور رسید و در آنجا گروه دیگری غیر از دو گروه قبلی را دید که هیچ سخنی را نمی فهمیدند. گفتند ای زرگرنی یعجوج و معجوج در روی زمین راه فساد و تباهی پیش گرفتند آیا ممکن است ما حزینهی برای تو در نظر بگیریم تا صدی میان ما و آنها ایجاد کنیم؟ گفت آن قدرتی که خدا در اختیار من قرار داده از هر چیز دیگری بهتر است. پس مرا با نیروی یاری کنید تا بین شما و آنها صدی ایجاد کنم. قطعات آهنین را برایم بیاورید و چون با آن قطعات بین آن دو کوه را پر کرد گفت بر آن آتش سوزان بدمید تا گداخته گردد سپس گفت مس زوب شده ای را بیاورد تا روی آن بریزم. و بدین نحو صدی شد که نمی توانستند از آن بالا روند و نه در آن نقبی ایجاد کنند گفت این رحمتی از جانب پروردگار من است پس هنگامی که وعده پروردگارم فرارست آن را در هم خواهم کبید بدانید که وعده پروردگار من حق است در روز قیامت آنها را چنان وامی گذاریم تا چون موج در هم بلولند. و چون در سور دمیده شود همه را گرد خواهیم آورد آنگاه جهنم را آشکارا بر کافران عرضه خواهیم کرد همانهایی که بر چشنهایشان پرده بود و درک حقایق نمیکردند و از یاد من غافل بودند همانهایی که توانایی شنیدن هیچ حقیقتی را نداشتند آیا منکران حقیقت تصور می کنند میتوانند بندگان مرا به جاگ من معبود و تکیگاه قرار دهند. ما برای منکران حقیقت جهنم را به عنوان منزلگاه تدارک دیده ایم بگو آیا میخواهید شما را از بدترین عمل کرد و آگاه سازن؟ کسانی که همه تلاششان در زندگی دنیا تبدیل هیچ شد در حالی که تصور میکردند عمل کرد نیکی داشتند آنان کسانی هستند که آیات نجات بخش پروردگارشان و نیز دیدار او را انکار کردند و به خاطر این جرم دستاوردشان تباه شد و ما نیز در روز بیامد برایشان ارزشی قائل نیستیم که آنان به خاطر انکار حقیقت و نیز تمسخر کردن آیات و پیامبران ما جهنم است کسانی که به حقایق ایمان دارند و دارای عملکردی پسندیدند با فردوس منزلگاهشان است در آنجا جاودانند و هرگز هوای ترک آنجا را در سر نمیپرورانند بگو اگر تمام دریاها مرکب شوند تا کلمات پروردگارم تمامی نعمتها و ها و مخلوقات او را بنویسند دریاها پایان میپذیرند قبل از آن که کلمات پروردگارم پایان پذیرند حتی اگر همانند دریاها را کمک آن قرار دهیم باز نمیتوانند کلمات خدا را احسا کنند ای پیامبر، بگو من هم بشری مثل شما هستم تنها امتیازی که هست این است که به من وعی میشود که ابلاغ کنم خدای شما خدای یگانه است. پس هر کس امید و اعتقادی به دیدار پروردگارش دارد باید عمل کردی میک و مفید داشته باشد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نکند قل انما انبشهم مثلکم یوحا ایلی انما ایلهکم ایله واحد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 داوند بلند مرتبه بود عزید. عزید. از از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلیم.